اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم هم فی غفلت معرضون نام بخشنده بخشایشگر حساب مردم به آنان نزدیک شده در حالی که در قفلتند و روی گردانند ما یأتیهم من ذکر من ربهم الا و هم يلعبون. هیچ یادآوری تازعی از طرف پروردگارشان برای آنها نمی آید مگر آن که با بازی به آن گوش می دهند. لا هي تنقلبهم واسر النجو الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون این در حالی است که دل در لهو و بی خبری فرورفته است وسطم گران پنهانی نجوا کردند و گفتند آیا جز این است که او بشری همانند شماست آیا به سراغ سحر میروید با اینکه چشم دارید و می‌بینید قال ربي القول في السماء والارض و هو السميع العليم. پیامبر گفت پروردگارم همه سخنان را که در آسمان باشد و چه در زمین میداند و او شنبابت داناست بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیدینا بی آیت کما ارسل الاولون آنها گفتند آنکه محمد آورده وحی نیست بلکه خوابهایی آشفته است اصلا آن را به دروغ به خدا بسته نه بلکه او یک شاعر است اگر راست میگوید باید معجزه‌ای برای ما بیاورد همانگونه که پیامبران پیشیم با معجزات فرستاده شدند ما امانت قابلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون تمام آبادی که پیش از اینها هلاک کردیم تقاضای معجزات گوناگون کردند و خاسته آنان عملی شد ولی هرگز ایمان نیاوردند آیا اینها ایمان می‌آورند؟ و ما ارسلنا رجالا نوحی إليهم. فسألو اهل كنتم لا تعلمون ما پیش از تو جز مردانی که به آنان وحی می کردیم نفرستادیم همه انسان بودند و از جنس بشر اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما كانوا خالدین آنان را پیکرهایی که قضا نخورند قرار ندادیم عمر جاویدان هم نداشتند ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم و من نشاء فَأَنْ جَيْنَاهُمْ وَمَنْ دَشَاءُ وَأَهْلَكْنَ الْمُسْرِفِينَ سپس وعد ای را که به آنان داده بودیم وفا کردیم آنها و هر کس را که می از چنگ دشمنانشان نجات دادیم و مصرفان را حلاک نمودیم لا تعقلون ما بر شما کتابی نازل کردیم که وسیله تذکر و بیداری شما در آن است آیا نمیفهمید و کم قصمنا من قریت کانت ظالمتا و انشعنا بعدها قوم آخرین چه بسیار آبادی های ستمگری را که هم شکستیم و بعد از آنها قوم دیگری روی کارا آوردیم فلما احسوا بأسنا اذا هم منها یرکدون انگامی که عذاب ما را احساس کردند ناگهان به فرار گذاشتند لا ترکدوا ورجعوا الى ما اترفتم فيه و مساکنكم لعلكم لعلكم گفتیم فرار نکنید و به زندگی پر ناز و نعمت و به مسکن پر زر و برقتان بازگردید شاید سائلان بیایند و از شما تقاضا کنند شما هم آنان را محروم بازگردانید قالوا یا ویلنا اینا كنا ظالمین گفتند ای وای برما به یقین ما ستمگر بودیم فما زالت تلك دعواهم حتی جعلناهم حصیدا خامدین و همچنان این سخن را تکرار می کردند تا آنها را درو کرده و خاموش ساختیم وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ما آسمان و زمین و آنچه را در میان آنهاست از روی بازی نیافریدیم لو اردنا ان نتخذ له اتخذناه من لدنا لَتَّخَذْنَاهُمِن لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ اگر میخواستیم سرگرمی انتخاب کنیم چیزی متناسب خود انتخاب می‌کردیم. اگر این کار را انجام میدادیم بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق و لکم الویل من تصفون بلکه ما حق را بر سر باتل می تا آن را حلاک سازد و این گونه باطل محو نابود می شود اما وای بر شما از توصیفی که در باره خدا و هدف آفرینش میکنید کنید و لهو من فی السماوات و من عنده لا يستکبرون عن عبادتهی ولا يستحسرون از آن اوست آنان که در آسمانها و زمینند و آنها که نزد اویند فرشتگان هیچگاه از عبادتش استکبار نمی و هرگز خسته نمی شوند یسبحون اللیل و لا يفترون. تمام شب و روز را تسبیح میگویند و سوست نمیگردند ام يتخذون الها من الارض هم ينشرون آیا آنها خدایانی از زمین برگزیدند که خلق میکنند و منتشر میسازند لو كان في ما إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اگر در آسمان و زمین جز الله خدایان دیگری بود فاسد می‌شدند و نظام جهان به هم میخورد منزه است خداوند پروردگار عرش از توصیفی که آنها میکنند لا یسآلوا عما یفعلون و هم هیچ کس نمیتواند بر کار او خرده بگیرد ولی در کارهای آنها جای سوال و ایراد است ام یتخذون من دونه الها قل ها هذا ذكر من معي وذكر من قبلی بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون آیا آنها معبودانی جز خدا برگزیدند بگو دلیلتان را بیاورید این سخن کسانی است که با من هستند و سخن کسانی است که پیش از من بودند اما بیشتر آنها حق را نمیدانند و به همین دلیل از آن روی گردانند و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الا نوحی الیه لا اله الا انا فعبدون ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که معبودی جز من نیست پس تنها مرا پرستش کنید و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد آنها گفتند خداوند رحمان فرزندی برای خود انتخاب کرده است او منزه است از این عیب و نقص آنها فرشتگان بندگان شایسته او گند لا یسبقونه بالقول وهم بأمره عملون هرگز در سخن بر او پیشی نمی گیرند و پیوسته به فرمان او عمل می کنند یعلم ما بین ایديهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضوا ولا يشفعون الا لمن ارتضوا وهم من خشيته مشفقون او اعمال امروز و آینده و اعمال گذشته آنها را میداند و آنها جز برای کسی که خدا راضی به شفاعت برای اوست شفاعت نمیکنند و از ترس او بیمناکند ومن یقل منهم انی له من دونه فذلك نجزیه جهنم كذل نجزی الظالمن و هرکس از آنها بگوید من جز خدا معبودی دیگرم کیفر او را جهنم میدهیم و ستمگران را این گونه کیف خواهیم داد اولا ميرى الذين كفروا أن السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون آیا كافر ندیدند که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم آیا ایمان نمی آورند وجعلنا في الأرض رواسيا ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا في وجعلنا فيها فجاجا في سبل لعلهم يهتدون و در زمین کوحای ثابت و پابرجایی قرار دادیم مبادا آنها را بلرزاند و در آن در و راه های قرار دادیم تا هدایت چفند و جعل السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون و آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم ولی آنها از آیات آن رویگردانند و هو الذی خلق اللیل و النهار و و كل فی فلك یسبحون او کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید هر یک در مداری در حرکت‌اند وما ما جعلنا لبشر من قبل کلخلد افا ایمیت تفهم الخالدون پیش از تو نیز برای هیچ انسانی جاودانگی قرار ندادیم وانگهی آنها که انتظار مرگ تو را می آیا اگر تو بمیری آنان جاوید خواهند بود؟ كل نفس ذائقت الموت ونبلوكم بالشر والخیر فتنة ولین ترجعون هر انسانی تعم مرگ را میچشد و شما را با بدیها و خوبیها آزمایش میکنیم و سرانجام به سوی ما بازگردانده میشوید وإذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اتَّخَذُونكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هم كَافِرُونَ انگامی که کافران تو را می‌بینند کاری جز استهزا کردن تو ندارند و می‌گویند آیا این همان کسی است که سخن از خدایان شما میگوید در حالی که خودشان ذکر خداوند رحمان را انکار می کنند خول این من عجل ساریکم آیاتی فلا تستعجلون آری انسان از عجله آفریده شده ولی عجله نکنید به زودی آیاتم را به شما نشان خواهم داد و یقولون متى هذا آنها میگویند: اگر راست میگویید این وعده قیامت کی فرا میرسد؟ لو عَلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن مُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هم ينصرون ولی اگر کافران میدانستند زمانی که فرا می رسد نمی های آتش را از صورت و از پشتهای خود دور کنند و هیچ کس آنان را یاری نمی کند این قدر در قیامت شتاب نمی کردند بل تأتی هم فتبهتهم, فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ینظرون آری، این مجازات الهی به طور ناگهانی به سراغشان می آید و مبهوتشان می کند آنچنان که توانایی دفع آن را ندارند و به آنها مهلت داده نمی شود ولا قاد استهزا برسل من قبل لك فحاق بالذین سخروا فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون اگر تو را استهزا کنند نگران نباش پیامبران پیش از تو را نیز استهزا کردند اما سرانجام را استهزا می کردند دامان مسخره کنندگان را گرفت و مجازات الهی آنها را در هم کوبید قل من یكلأكم باللیل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون بگو چه كسی شما را در شب و روز از مجازات خداوند بخشنده نگاه میدارد ولی آنان از یاد پروردگارشان رویگردانند ام لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ دَاعِبُونَ آیا آنها خدایانی دارند که میتوانند در برابر ما از آنان دفاع کنند این خدایان ساختگی حتی نمی توانند خودشان را یاری دهند تا چه رسر به دیگران و نه از ناهیه ما با نیرویی یاری میشوند. بل متعنا هؤلاء و آباءهم حتی طال عليهم العمر افلا يرون اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون ما آنها و پدرانشان را از نعمتها بهرمند ساختیم تا آنجا که عمر طولانی پیدا کردند و مایه قرور و تقیانشان شد آیا نمی بینند که ما پیوسته به سراغ زمین آمده و از آن و اهلش می آیا آنها قالبند یا ما؟ قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون بگو من تنها به وسیله وحی شما را انذار میکنم ولی آنها که گوشهایشان هایشان کرست هنگامی که انذار میشوند سخنان را نمیشنوند. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَتٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ اگر کمترین عذاب پروردگارت به آنان برسد فریادشان بلند میشود که ای وای برما ما هم جيست هم بودين ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبت من خردل أتينا بها وكفى حاسبين ما ترازوهای عدل را در روز قیامت برپا می کنیم پس به هیچ کس کمترین ستمی نمی شود. و اگر به مقدار سنگینی یک دانه خردل کار نیک و بدی باشد ما آن را حاضر می کنیم و و است که ما حساب کننده باشیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ما به موسی و هارون فرقان وسیله جدا کردن حق از باطل و نور و آنچه مایه یادآوری برای پرهیزگاران است دادیم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون هم الذين از پروردگارشان در نهان میترسند و از قیامت بین دارند و هذا لك مبارك انزلناه اف انت و این قرآن ذکر است که بر شما نازل کردیم آیا شما آن را انکار می کنید؟ ما وسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم و از شایستگی او آگاه بودیم از قال ابیه وقومه ما هذه التماثیل الَّتی انتم لها عاکفون آن هنگام که به پدرش آذر و قومش گفت این مجسمه های بیروح چیست که شما هموار آنها را پرستش میکنید کنید وجدنا وَجَدْنَا لها لَهَا گفتند ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می‌کنند گفت مسلما هم شما و هم پدرانتان در گمراهی آشکاری بودید و بالحق ام انت من گفتند آیا مطلب حقی برای ما آورده ای یا شوخی می کنی؟ قال بر ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن و على ذلك من الشاهدين گفت کاملا حق آورده پروردگار شما همان پروردگار آسمان ها و زمین است که آنها را ایجاد کرده و من بر این امر از گواهانم و بعد ان مدبرین و به خدا سوگند در قیاب شما نقشه برای نابودی بچهایتان می‌کشم. فجعلهم إلا كبيرا لهم لعلهم إليه سرانجام با استفاده از یک فرصت مناسب همه آنها جز بط بزرگشان را قطعه قطعه کرد شاید سراغ او بیایند و او حقایق را بازگو کند قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين هنگامی که منظره بت‌ها را دیدند گفتند هر کس با خدایان ما چلین کرده قطعاً از ستمگران است و باید کیفر سخت ببیند قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم گروهی گفتند، شنیدیم نوجوانی از مخالفت با سخن می گفت که او را ابراهیم می گویند. قالوا فأتو به الناس لعلهم جمعیت گفتند، او را در برابر دیدگان مردم بیاورید تا گواهی دهند. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم ان قومي که ابراهیم را حاضر کردند گفتند تو این کار را با خدایان ما کرده ای ای ابراهیم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم فاسالوهم ان كانوا ينطقون گفت بلکه این کار را بزرگشان کرده است از آنها بپرسید اگر سخن میگویند فرجعوا الى انفسهم فقالوا ان انتم الظالمون آنها به وجدان خیش بازگشتند و به خود گفتند حقا که شما ستمگرید ثم نقسوا على رؤوسهم لقد علمت ما سپس بر سرهایشان واژگونه شدند و حکم وجدان را به کلی فراموش کردند و گفتند تو میدانی که اینها سخن نمیگویند قَالَ اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُوكُمْ ابراهیم گفت آیا جز خدا چیزی را می که نه کمترین سودی برای شما دارد و نه زیانی به شما میرساند رساند؟ قُفِّن لَكُمْ وَلِمَا افلا تعقلون بر شما و بر آنچه جز خدا می پرستید. آیا اندیشه نمی کنید؟ حرقوه و انصرو ان فاعلین گفتند او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید اگر کاری از شما ساخته است قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم سرانجام او را به آتش افکندند ولی ما گفتیم ای آتش بر ابراهیم سرد و سالم باش ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرين آنها می‌خواستند ابراهیم را با این نقشه نابود کنند. ولی ما آنها را زیان کارترین مردم قرار دادیم. و جنا هو لوط الأروض الذي بر نفی و او و لوت را به سرزمین شام که آن را برای همه جهانیان پر برکت ساختیم نجات دادیم. و له اصحاق وكلا و نافله فله و کلا جعلنا و اسحاق و علاوه بر او یعقوب را به بی بخشیدیم و همه آنان را مردانی صالح قرار دادیم و جعلناهم یهدون بی و اوحینا الیم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و لنا عابدین و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت میکردند و انجام کارهای نیک و برپاداشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم و تنها ما را عبادت میکردند ولوط آتیناه حكما و علما و نجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين و لوط را به یاد آور که به او حکومت و علم داغيم و از شهری که اعمال زشت و کثیف انجام می رهایی بخشیدیم چرا که آنها مردم بد و فاسقی بودند و ادخلناه فی رحمتنا انده من الصالحین و او را در رحمت خود داخل کردیم او از صالحان بود و نوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجیناه و اهله من الكرب العظیم و نوح را بیاداور هنگامی که پیش از آن زمان پروردگار خود را خواند ما دعای او را مستجاب کردیم و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم و نصرناه من القوم الذین كذبوا بآياتنا، انهم كانوا قوم سوء، فاغرقناهم جمعین و او را در برابر جمعیتی که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاری دادیم چرا که قوم بدی بودند از این رو همه آنها را قرق کردیم و داوود و سلیمان اذ یحکمانی فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم اذ نفشت فیه غنم القوم و کننا لحکمهم و داود و سلیمان را به خاطر بیاورد هنگامی که درباره کشت زاری که گوزفندان بی شبان قوم شبانگاه در آن چریده و آن را تباه کرده بودند داوری می کردند و ما بر حکم آنان شاهد بودیم. ففهمناها سلیمان و کلا حكما وعلما و علما و سخرنا مع داود الجبال يسبحنا و و ما حکم واقعی آن را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از آنان شایستگی داوری و علم فراوانی دادیم و کوها و پرندگان را با داوود مسخر ساختیم که همراه او تسبیح خدا میگفتند و ما این کار را انجام دادیم و علمناه صنعت لبوس لكم لتحصنكم من بأسکم فهل انتم شاكرون؟ و ساختن زره را به خاطر شما به او تعلیم دادیم تا شما را در جنگ جنگهایتان حفظ کند آیا شکر گذار این های خدا هستید ولی س ای من نریح عصفتا تجریبی امری إلى الأرض الذي براک فيها وکن بكل ب شيء عالمين و باد را مسخر سلیمان ساختیم که به فرمان او به سوی سرزمینی که آن را پر برکت کرده بودیم جریان می یافت و ما از همه چیز آگاه بودهایم ومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظین و گروهی از شیاطین را نیز مسخر او قرار دادیم که در دریا برایش غواسی میکردند و کارهایی غیر از این نیز برای او انجام میدادند. و ما آنها را از سرکشی حفظ میکردیم و ایوب ربه و ارحم الرحیمین و ایوب را به یاد آور هنگامی که پروردگارش را خواند و عرضه داشت بد حالی و مشکلات به من روی آورده و تو مهربان ترین مهربانانی فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا رحمه من عندنا ما دعای او را مستجاب کردیم و ناراهتی را که داشت برطرف ساختیم و خاندانش را به او بازگرداندیم و همانندشان را بر آنها افزودیم تا رحمتی از سوی ما و تذکری برای عبادت کنندگان باشد و اسماعیل و ادریس و دلکفل کل من الصابرین و اسمائیل و ادریس و زلکفل را بیاد آورد که همه از صابران بودند و ادخلناهم فی رحمتنا اینهم من الصالحین و ما آنان را در رحمت خود وارد ساختیم چرا که آنها از صالحان بودند وَذَنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قُدِّرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَذَنُونَ یونس را یاد آور در آن هنگام که خشمگین از میان قوم خود رفت و چنین میپنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت. اما موقعی که در کام نهنگ فرو رفت در آن ظلمت متراکم صدا زد. خداوندا جز تو معبودی نیست. منزهی تو من از ستمکاران بودم. فاستجبنا له و من الغم و کذالک ننجی المؤمنین ما دعای او را به اجابت رساندیم و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم و این گونه مؤمنان را نجات میدهیم و زکریه اید نادا ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارفین و زکریه را آور در آن هنگام که پروردگارش را خواند و عرض کرد پروردگار من مرا تنها مگذار و فرزند برومندی به من عطا کن و تو بهترین وارسانی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ما هم دعای او را پذیرفتیم و را به او بخشیدیم و همسرش را که نازا بود برایش آماده بارداری کردیم چرا که آنان خاندانی بودند که همواره در کارهای خیر به سرعت اقدام میکردند و در حال بیم و امید ما را می‌خواندند و پیوسته برای ما خازه و خاشع بودند والذین احصنت فرجها فنفخنا فیها فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَا هَا وَبِنَهَا آیت لِلْعَالَمِينَ و بیاد آور زنی را که دامان خود را پاک نگه داشت و ما از روح خود در او دمیدیم و او و فرزندش را نشانه بزرگی برای جهانیان قرار دادیم ان هَذِهِ أُمَّتُكُمْ پیامبران بزرگ و پیروانشان همه امت واحدی بودند و پیرو یک هدف و من پروردگار شما هستم پس مرا پرستش کنید و تقطعو امرهم بینهم كل الینا راجعون گروهی از پیروان ناآگاه آنها کار خود را به تفرق در میان خود کشندند ولی سر انجام همگی به سوی ما باز می گردند فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه فلا كفران لسعیهی و انا و هر کس چیزی از اعمال شایسته به جا آورد در حالی که ایمان داشته باشد کوشش او ناسپاسی نخواهد شد و ما تمام اعمال او را برای پاداش می نویسیم و حرام علی قریت اهل کنها، لا یرجعون. و حرام است بر شهرها و آبادیهای که بر اثر گناه نابودشان کردیم که به دنیا باز کردند آنها هرگز باز نخواهند گشت حتی اذا فتحت یعجوج و وهم من كل حدبی ينسلون تا آن زمان که یعجوج و معجوج گشود شوند و آنها از هر محل مرتفعی به سرعت عبور می کنند وَقَدْ الوعد الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَتٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ يا يَا وَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كنا ظَالِمِينَ و حق قيامت نزدیک می شود در آن چشمهای کافران از وحشت از حرکت باز میماند میگویند ای وای بر ما که از این جرایان در قفلت بودیم بلکه ما ستمکار بودیم انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون شما و آنچه غیر خدا می پرستید هیزم جهنم خواهید بود و همگی در آن وارد می شوید. لو ها ما و كلن فيها خالدون. اگر اینها خدایانی بودند هرگز وارد آن نمی شدند در حالی که همگی در آن جاودانه خواهند بود لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون برای آنان در آن دوزخ ناله های درد است و چیزی نمی شنوند ان الذين سبقت لهم من الحسناء اولئک عنها اما کسانی که از قبل وعده نیک از سوی ما به آنها داده شده از آن دور نگاه داشته میشوند. شوند لا و هم آنها صدای آتش دوزخ نمی شنوند و در آن که دلشان بخواهد جاودانه متنعم هستند لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا هذا يومكم الذي كنتم توعدون وحشت بزرگ آنها آنهارا نمی نمیکند و فرشتگان به استقبالشان میآیند و میگویند این همان روزی است که به شما وعده داده میشد. يوم السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده علينا نا نا فاعلين در آن روز که آسمان را چون تو ماری در هم سپس همان گونه که آفرینش را آغاز کردیم، آن را باز می‌گردانیم. این وعده است بر ما و قطعاً آن را انجام خواهیم داد. و لقد في من بعد الذكر در زبور بعد از ذکر تورات نوشتیم. بندگان شایستهام هم وارث حکومت زمین خواهند شد این فی هذا لبلاغ لقوم عابرین در این ابلاغ روشنی است برای جمعیت عبادت کنندگان و ما ارسلناک الا رحمدا للعالمین ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم قل انما يحا أنما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون بگو تنها چیزی که به من وحی می شود این است که معبود شما خدای یگانه است آیا با این حال تسلیم حق میشوید و بت را کنار میگذارید گذارید؟ ذین تولوا فقل اذنتکم علی سواء وان ادری اقریب ان بعید ما توعدون. اگر باز رویگردان شوند بگو من به همه شما یکسان اعلام خطر میکنم و نمیدانم آیا وقتی عذاب خدا که به شما داده می شود نزدیک است یا دور اینهو یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمون او سخنان آشکار را میداند و آنچه را می کنید نیز میداند و چیزی بر او پوشیده نیست وإن أدری لعله فتنة لكم ومتاع إلی حين و من نمیدانم شاید این آزمایشی برای شماست و مایهٔ بهرهگیری تا مدتی معین قال رب احكم بالحق و ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون و پیامبر گفت پروردگارا به حق داوری فرما و این تقیانگران را کیفر ده و پروردگار ما خداوند رحمان است که در برابر نسبتهای ناروای شما از او استمداد میطلبم